فصل دهم ده در ورودی خیابان آلبانی که به خیابان ساحلی می رسید دو کافه روبروی هم بودند سمت راستی شلوختر بود چون آنجا سیگار و روزنامه می فرختند. از صاحب کافه پرسیدم شخصی به اسم جاکدین بوسرژان می شناسد نه این اسم به گوشش نخورده بود زنی بور که آن حوالی زندگی می کند با ماشینش تصادف کرده نه نمیدانست ولی شاید میتوانستم در تعمیرگاه بزرگی که کمی دورتر در خیابان ساحلی قبل از پارک تروکادرو بود و ماشین های آمریکایی میفروخت، اطلاعاتی به دست بیاورم. آنها مشتری های زیادی در آن محله داشتند. صورتش سخمی شده بود. این جور موارد زود پیدا می شوند. پس بروید و از تعمیرگاه بپرسید. از سوالم تعجب نکرده و معدبانه و با کمی خستگی جواب داده بود. از این که اسم جاکنین بسرژان را گفته بودم پشیمان شدم. باید منتظر باشید دیگران به شکل طبیعی سمتتان بیایند. بدون حرکات خشن. باید بی حرکت و خاموش ماند و توی ماهیت زوب شد. همچنان پشت دورترین میز نشسته بودم. انتظار می کشیدم. مثل کسی بودم که سپیددم دیدم کنار ایستاده و قبل از دیدن طلاتم آب‌های راکت صبر می‌کند تا چشمهایش به تاریک و روشن عادت کنند با چرخیدن در خیابان‌های دور و اطراف بیش از پیش مطمئن می‌شدم که بدون کمک کسی پیدایش خواهم کرد در منطقه ای راه می‌رفتم که زیادی مورد توجه بود برای دسترسی به آنجا خیلی وقت گذاشته بودم تمام سیر و هایم در پاریس، مسیرهای دوران کودکیم از ساحل چپ به جنگل ونسن و بلونی و از جنوب به شمال، ملاقات های پدرم و پرس زدن هایم در سالهای آخر، همه اینها مرا به محلهی کشنده بودند در دامنه تپه و حاشیه سن. محلهی که میشد به راحتی اسمش را مسکونی گذاشت یا اصلا اسمی نگذاشت. در نامه‌ای که تاریخش به پانزده سال پیش برمیگشت و تازه دیشب دستم رسیده بود توی این محله با من قرار گذاشته بودند. خیلی هم دیر نشده بود. باز کسی پشت یکی از این پنجره‌ها منتظرم بود. پنجره‌هایی که همه گی شبیه هم بودند و ساختمان‌هایی که نمی‌شد از هم تشخیصشان داد.